بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حضن ولا قبت اللّه بالله لیّ العظيم وصلى الله و الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. سجماء بقيه الله في السماوات والنارزين فأتفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبيه واحقاد الجاهليه فإن ما تلك الحميه تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزقاته ونفثاته کنفیقیس به همدلله خدمت عزیزان، برادران و خواهران وزاگوار میهمان سخنان بیزوال امیرالمؤمنین هستیم و در بوستان کلمات علوی به گل گشت استفاده میکنیم از خطبه نورانی سد و نود و دوم امام با عنوان خطبه قاصعه با مهبریت شناخت شیطان شیطان صفاتان اصحاب و اتباع شیطان و راه های مقابله با آن الان قسمی رو مطرح می کنیم که امام به این بخش انتهایی کلام که اشارت کردیم ما را ارجاع می دهد و چنین بازگو می‌فرماید که فعت فعو ما کمه نفی قلوب من یه جمله رو فقط تکرار میکنم به اون این که ملاحظه فرمودید که امیرالمؤمنین بیان کرد که ابلیس و شیطان با تمام توان و نیرو به صحنه آمده است از همه امکانات خودش در عداوت و دشمنی با شما استفاده میکند هیچ کوتاهی ندارد هیچ زمان و مکانی رو برای شما امن نمی گذارد همه شرایط رو برای شما نامد می کند عبارات عجیبی رو وجود اونباره که به کار بردن که من اشارت کردم باز هم فاش می گویم و از گفته خود دلشادم در هیچ متنی از متون بشری که انسانی گفته باشد از عزل تا عبد چنین مطالبی وجود ندارد قطعا ترکیبات عبارات ظرافتان که مخصوصاً در بخشی که دیروز خدمت عزیزان خواندیم واقعاً اینها های کلام امیر امیرالمؤمنین است و اختصاص به حضرت او دارند. به اینجا که رسید امام فرمود شما هم باید این چنین کنید. وقتی که شما دشمن رو با تمام قوا و نیرو در صحنه می‌بینید اگر ابلیس تمام امکاناتشو در نظر گرفته است و هیچ ناحیه و قسمت امنی رو برای شما باره گذارد شما باید از تمام امکاناتی که خداوند به شما ارزانی فرموده است استفاده کنید و مجهز کامل در قبال چنین دشمنی و خطر و آسیب جدی در جان و در وجود خودتان باشید چه باید کرد فرمود فعت فعو ما كمن فین قلوب کم من نیران العصبیه و احقاد الجاهدیه فعت فعو کلمه اتفاق به معنای خاموش کردن است روشن است برای دوستان سریعا به ذهنتون میاد یریدون لیت فعو نور الله اراده می که نور الهی را خاموش کنند. پس اتفاق به معنای بیرونخ کردن خاموش کردن محف کردن یه وقتی در همین کشور ما به اداره آتش نشانی به سازمان آتش نشانی دائره اتفاعیه می گفتند یعنی سازمانی که مسئولیت خاموش کردن آتش ها رو به عهده دارد امام فرمود خاموش کنید فعتف او ما که همه نفی قروب من نیران عصبیه. خاموش کنید آن که کمنه فرو رفته است و پنهان است در جانهای شما که مراد از آنچه پنهان است در جانهای شما آتش و شعله های عصبیت و تعصب است و احقاد الجاهلیه و حقده ها و کینه است که برخواسته از جهل و جهالت و جاهلیت است فانما فا تِلْكَ الْحَمِيَّتُ وَتَكُونُ و المسلم ادامه عبارت رو بعد از این توضیحی که اشاره کردم خواهم گفت استعزار داری در مواجهه و مقابله با شیطان آنچه مهم است عزیزان اولین جملهی که تعلیم آموزش قرآن است اما نیست که آن قاری بزرگوارمون در انتهای کلمات و سخنان خودشون خاندن دو ما را دعوته با اون می کند، ذات باری تعالی می‌دونیم که در آغاز قرآن دو ادب وجود دارد. در آغاز کار با قرآن یک ادب، ادب ادب است. دوم ادب تسمیه. هر دو برگرفته از کلام الهی. یعنی فإِذَا قرأتن قرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم. این ادب استاز است. ادب دوم، ادب تسمیه. اقرأ بِاسْمِ رَبِّک. خداوند می‌گوید قرائتتون با چی آغاز بشه؟ با نام خداوند باید آغاز شود. این ادب استعازه و ادب تصمیه اختصاص به قرآن ندارد یعنی در تمام حوزه‌های های زندگی حرفیل و انفعال و حرکتی را که انسان مسلمان میخواهد آغاز کند خداوند دورا دعوت میکند به اینکه که چنین کند یعنی این کار با استعازه و با تصمیه باشد اول کار استعازه است استعازه در لغت از ماده آوز میاده به معنای اتصال التصاق چسبیدن استازه یعنی طلب التجاد طلب پناهندگی طلب به پناه رفتن به هاشیه امن رفتن این اصطلاح پناهندگی رو امروز در عرف سیاسی دنیا می شنسیم هنگامی که انسان مجموعه خطرات رو در وجود حس می کند و لمس می کند در جان و جهان اونگاه در پی پناهی می گردد که بتواند خودش را از این خطرات و سیب های محلک حفظ کند می سوی می جوید هیچ پناهی پیدا نمی کند در آفرینش و در وجود که به او امنیت بدهد و معمنی باشد جز آن که زن و انلا من, من الله الا الله الله اله جز ذات قدسی صبحانی و حضرت باری تعالی او تنها پناه نیست که می تواند انسان رو پناه بدهند استعازه یعنی در پناه حضرت باری تا رفتن مسئولیت و امنیت رو از خداوند در قبار هر آسیب و خطری جستن و به دست آوردن این مفهوم استعازه است. اولین چیزی که در قبار شیطان خداوند به ما آموزش میدهد دهد است. عزیزان یعنی اینکه که خطر رو حس کنیم اونگاه حاشیه امن رو معمن و پناهگاه رو بجویم و به سوی پناهگاه حرکت کنیم حالا ساز و کار استعازه از شیطان این دیگه بحث مفصلی است استعزار دارید که بسیاری از این عباراتی که ما میگوییم و ما متأسفانه متاسفانه ابتداعن در ذهن انسان ها مقوله لفظی اون میاد یعنی حوقله به تعبیر و دبا. وقتی میگید ولا حول ولا قوت الا بالله نری نازیم می‌گید ما شاء الله انشا الله این‌ها رو ما ولا تقولن لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ قَدَرُ اللَّهِ إِنْ يَشَأْ الله تَغُولْ هِچ کار رو میخوام انجام بدم فردا مگر اینکه بگی ان الله ما همین گفتنش رو یاد گرفتیم یعنی ما به لفظ می‌گوییم ان الله ما شاء الله ما الله الله یعنی گمان میکنیم که ان گفتن ظاهری همان ابیاتی که گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم و خواندیم چون خدا خواهد نگفتند از بتر تا خدا بنمودشان عجز بشر وقتی که اون محبوبه‌ی سلطان دو چارون بیماری شد و طبیبان نشستند و تعوذ شد کمیسیون پزشکی تشکیل بدن و درمان اون بکنن تا که سلطان گفت آ بسم الله این بیمار ما در اینها معطل نکردن گفتن به سه شماره درمانش میکنیم هیچ معطلی ندارد چون خدا خواهد یعنی ان الله نگفتند از بتر بتر اون کبر و غروری که داشتن تا خدا بنمودشان عجز بشر هر کاری کردن نتونستن کاری بکنن هیچ علاج نشد درمان افاقه نکرد بعد او میگوید ترک استثنا مرادم قسوتی است نه همین گفتن که حالتی است منظور من از این ان شاءالله اینکه اینا نگفتن نه اینکه به زبانشون نگفتن این باور قلبی و وجودی است که در عمق جان باید مرور شود که ان الله. یعنی همه امور رو محول بر مشیت خدا و در تمام اجزاق وجود و هستی دیدن که لا و محصر وجود؟ الوجود الا الله که هیچ موثری رو در وجود در حقیقت ندیدن جز حضرت باری تعالی این انشاء الله هست این باور و عقیدو در جز جز جمع و وجود انسان نشستن چنین فکر پاکیزه و اعتقاد پاکیزه است که انشاء الله است. ترک استثناء مرادم قصبتی است نه همین گفتن که آرزالتی است ایبسا ناورده استثناء بگفت جان او با جان استثناء جفت گاه دهان بسته است و الله گفته نمیشود اما سلول سلول وجود انسان میگه ان الله ان الله الله این مراد است پس گفتن خیلی از این الفاظ ما لفظ رو می دانیم گفتن بسم الله در آغاز کار صرف بسم الله نیست اگر کسی با بسم الله کار را آغاز می میکند میتواند کار او در غیر مسیر و مجرای منتهی به ذات باری تعالی باشد میتواند بدون استمداد از رحمت اطوفانه و مهر ورزانه کار خودش را آغاز کند و چنین نیتی در وجود او باشد و و استعاذ هم این چنین است عزیزان گاهی مزاح میکنین با دوستان اون ابیات خیلی زیبا اینو من نوشتم حالا عبدالرحمن جامی خیلی قشنگ میگه این بالاخره این دزده سارقه به تعبیر ما میخواد این گافسنده رو باز کنه و نمیشه عوض بالله من شیطان الرجیم استغفرالله الله این چرا باز نمیشه گاه این چنین میشه عوض بالله ما این عوض بالله نیست به تعبیر جامی بلکه این اعوذ به شیطان است و این فرار از رحمان است پس این صرف گفتن نیست عزیزان بلکه آن است که در وجود انسان استعازه فکری استعاضه قلبی استعاضه زبانی و استعازه عملی یعنی در عمل و فکر و اندیشه در پناه خدا رفتن به ملوکیت الهی به ربوبیت الهی به خالقیت خدا و ملتجی شدن و باسما و صفات الهی پیوستن اینه که انسان رو مسئولیت از شیطان میده اینه که انسان رو در پناه امن حضرت باری تعالی قرار میده و شیطان کیست که بتواند در چنین انسانی رخ نکند و در جان او پا بگذارد و اثر کند اصل غزیه استعازه است به این معنای گسترده این که اشاره می‌کنم، هنگامی که انسان حس کرد و مستعیز به حضرت باری تعالی شد در حقیقت چی شده؟ در حقیقت به کوه بندگی و عبودیت پیوسته است علامه احد الهینکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان انه هو لكم مذکوم این عهد الهی با وجود و جان و فطرت شماست که نکند که به اطاعت شیطان ملتزم باشید عموم مفسران در اینجا الله و شیطان را الله و شیطان میگویند چون عبادت شیطان که معنی نداره اطاعت شیطان نکنید این بحث بحث اطاعت است اطاعت شیطان نکنید که این دشمن مبین شماست و انعبدونی حالا راه گریز از شیطان چیست؟ و انعبدونی ها سراطم مستقیم راه رفتن دروادی و جاده عبودیت و بندگی است که از استاز آغاز می شند و انسان وجود خودش رو در پناه حضرت باری تالا می سپارد و تسلیم حضرت جانان است خب نکات کلی اینهاست هست که حرز می کنم خدمت دوستان اگر من در یه جمله کوتاه بخوام خلاصه و چکیده مطلب رو در تایی این چند سطری هم که می و عطفه به تمام آن اون چها ایم در مواجهه با شیطان در قرآن کریم و مجموعه سخنان معصومین راهکار ما دو تا راهکار است عزیزان در مواجهه با شیطان ما دوتا راهکار داریم یه راهکار علمی داریم یه راهکار عملی داریم یعنی یک شناخت و کسب معرفت است عزیزان به تمام پیچیدگی ها و خصوصیات نفس آسیب نفس را شناختن مداخل ورودی نفس را شناختن و نفس و ما سبواها فعلهمها فجورها و تقواها رو دانستن انسان نفس خودش را بشناسد با تمام آسیب و با تمام فرصت و تهدیدها ذات قدسی سبحان اسماء و صفات الهی بداند سیطره خداوند و احاطه ذات باری در وجود بشناسد که هنگامی که عزیزان من برادران و خواهران و این شناخت دست بده و انسان موحد بداند تمام وجود آنچنان در سیطره صفات الهی است که و ولق و حروف عباده والله من محیط. و allowNullهم وراهم مهید اون احاطه و قهر ذات باری را در وجود بداند اونگاه هیچ جایی برای شیطان در ذهن و خیال او و در صحنه هستی باقی نمی ماند تمام وجود میشه چی میشه زیر سیطره و فرمان الهی و حاکمیت خداوند در تمام هستی و در جان مسلم و متقن. چرا ما با جا به ابلیس در جانمون و در جهان می دهیم به همان مقداری که خدا را از جان به جهان چه می کنیم به در می کنیم و برون میبریم گفت یا جای تو یا جای من است خلوت دل نیست جای صحبت قیار دیف چو بیرون رو فرشته در آید. یا حاکمیت حق است یا حاکمیت باطل یا رحمان یا شیطان اگر کسی حاکمیت خدا رو در وجود و هستی دید جایی برای هنرنمایی ابلیس باقی نمی ماند ما جعل الله رجال من قلب فی جوفه مگه ما دو دل به یه انسان دادیم اگر دل در تصرف خداست شیطان محلی پیدا نمی کند که بیاید پاور اما وقتی دل در تصرف خدا نیست و هر قلبو حرم الله لا توسکن حرم الله غیر الله وقتی این دل به تصرف خدا نیست در جای تصرف کیست؟ غیر خدا و اغیاره است ابتدا ان بحث بحث معرفت از عزیزان هنگامی که میشناسد یعنی توحید توحید وقتی معرفت توحیدی ما قوی میشه معرفت الله بالا می آید اللهم معرفنی نفسک هنگامی که انسان خودش رو میشناسد، شناسد آسیب و خطرات وجودی خودش رو میشناسد، شناسد گام را چنان برداشته است که با این معرفتی که عقبه عملی و حرکت وجود اوست. دیگه محلی برای اتناع شیطان و التفات به شیطان و از ارتبازیری اون در وجود باقی نمیگذارد اما این معرفت وقتی به بار می نشیند که پشتوانه اون چیست؟ عمل یعنی نتیجه اون بفرمایید سماری اون عمل وقتی چه اومد اون علم و معرفت به این حقایق قرین شد متصل شد به عمل کار تمام است. یعنی ما در قبال شیطان یه بحث معرفتی و علمی داریم و یه بحث عملی داریم تا این دو اتفاق نیفتد این درگیری ما هم به پایان نمیرسد و همیشه بالاخره او میکشید و من میکشیدم گاهی از این سوس همچو مجنون در تنازع با شطر گه شطور پیچید و گه مجنون هر گاهی شطور برمیگشت گاه مجدون برمیگردند این قصه باید بالاخره روزوشب همراه ما باشد و اون امنیت نمیاد یا رسول الله آیا شما هم شیطانی دارید؟ فرمود هر کسی شیطانی دارد که یعطری ایزانش می کند به او می پردازد یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ فرمود ای و ربی بله من هم شیطان دارم الا انهو اصلم علایده یه الا اینکه من شیطان و مسلمان کردم الا این که شیطان من تسلیم من شده است توجه دارید وقتی حاکمیت خدا اومد اون معرفت ما حالا اون شناخت به تمام این ساز و کارها این شناخت به تمام این آسیب ها خیلی وسواهی میکنم اینو میخوام آمیانش کنم مطلب رو عرفیش کنم مطلب رو خدمت دوستان وقتی انسان تمام نقاط قوت خودش رو میداند و تمام نقاط ضعف و قوت حریفش رو میداند، تمام نقاط ضعف و قوت خودش رو میداند، این بهترین قهرمان است. به مجرد اینکه این حریف میخواد اول زربا رو بزند تو این مبارزه، اون کاملا میداند از کجا میزنه، حرکت اولش چی، حرکت دومش چی. اونان چه شطرنج بازی است که تمام حرکات رو خونده تا حریف به هم می‌گردد کیش مات. تمام از کار اما هنگامی که نمیدانیم با کی مواجهیم ما تو وجود چی داریم با چه ابزاری می‌خوایم مقابله کنیم توان ما چیه در قبال ابلیس توان ابلیس چیست بعد چی تصور میفرمایید گمان می‌کنید ما کسی می‌تواند بگوید عوض و بله من شیطان رجیم واقعا کجا میتونیم این رو بفهم جهل با جهل با چی می‌خوایم ما مواجه بشیم این که معنی نداره پس تا زمانی که ندانیم چه داریم قوت و زعف من را عزیزان در این وجود به کی متصلیم؟ به کجا متصلیم؟ ما چی میتونیم بگیریم از ذات باری تالا؟ چگونه میتوانیم قوت خودمون را از قوت یا قوی و عزت من رو از یا عزیز و حکمت من رو از یا حکیم علم من را از یا علیم؟ و عزتمون رو بگیریم از اون حضرت باری تالا و پروردگار وجود تا زمانی که متصل نشیم زعفمون رو ندانیم و حریفمون رو نشناسیم تو این هماورد این مچ ماست که به میخورد این ما اینکه خاک نشین میشیم این مضمون که کتبه علیه انه من تبلنا فانه یذله و یهدی حزاب الی عذاب میریم تو عذاب سعیدی که امیرالمومنین دیروزم پس کار علمی میخواهد و معرفتی میخواهد و کار عملی حالا این دو رو حضرت بازگو میفرمایند یعنی این کار علمی و عملی رو وجود مبارک امام در زیباترین عبارات همین دو سرفصل رو با شرح و بسط زیبایی بازگو میکنند وجود مبارک امام فرمود فعتفه او خاموش کنیم آتش رو با چه خاموش کرد؟ با یه عامل قوی مانند آب آب میدونید در حقیقت چیه؟ علم است عزیزان علم است و کان عرشوهو علماء عل ببینید من چون عرض می کنم خدمت دوستان با کمال ادب و حرمت و احترام به همه صاحب نظران و صاحبان اندیشه حی آنها و میت آنها عرض می کنم من اعتقاد به تعویل قرآن ندارم من اعتقاد به تعویل قرآن از غیر معصوم ندارم نرسیدم به این معنا در طول سده کار با قرآن به این معنا رسیدم که تفسیر کار غیرمعصوم است اما تعویل کار معصومه یعنی وجود نازنین محمد و آد محمد. محمد. محمد. محمد. محمد. محمد. محمد و این که انسان غیرمعصوم عند نفسه با نظر هرچند به جایگاه و رتبه بالای علمی هم رسیده باشد به آیات قرآن را تعویل کند غیر مستند است یعنی یکی مقابل او می‌نشیند خلاف این حرف اون رو و مطلب دیگه ای رو با ذهن و گمان خودش تعویل می‌کند و تحویل با آیات شریفه قرآن می‌کند لذا ولا یعلم هو الا الله و راسخون فی و اعتقاد ما این است که راسخون در علم به معنای واقعی نیستن مگر اونها که از سرمن شع وحی نوشیده‌اند یعنی حضرات معصومی علیه ما و السلام این کار اونا هست تحویل قرآن اگر داشته باشیم سخنی که از معصوم صادق و مسلم بر اساس اصول علم رجال و درایه حدیث متقن نانندگان این علم میشن و سنشون پنجه تا عبارت عربی بذارید پیش کسی که درایه میداند و رجال میداند به شما میگد این یکی روایت است این چلون تا روایت نیست مجعوله شم یعنی شم و روایت بو می در روایت منصوم رو میشنند یعنی میدونه پیامبر در طول عمرش یک بار هم این واژه‌ای که این تو این روایت هست نگفته این روایت سخن منصوم به امام پیامبر نیست هزار نقطه باریکتر زمو اینجاست دارید از زبان معصوم تعویل کردن این تفسیر نیست تعویل کردن ما را به علم گفتم قدرت خدا بر علم الهی مستولی است و کان عرش او ما توجه دارید و کان عرش او ما پس آب در حقیقت علم است عزیزان معرفت سعادت او خاموش کنید با آب معرفت آنچه چه کم نفی آنچه آن چه فرو رفته در دلهای شما من نیران العصبیه از این آتش های پس ببینید ما کار با شیطان رو با معرفت شروع میکنیم و از کجا شروع می‌کنیم؟ از درون خودمون از درون نفس خودمون عزیزان ابتداعا درون است تکریف رو در این درون باید روشن. روشن کرد با ابلیس نفس با این نفسی که سرسپارده ابلیس و نماینده ابلیس در وجود ما می شود انگامی که به امارگی می رود فرمود خاموش کنید این آتش فرو رفته رو در جانتون اصبیت است تأصب است اولین چیزی که امیر المومنین حشدار به اون می در مواجهه با, ابل... با ابلیس اصبیت تأصب یعنی چی؟ ببینید عزیزان گاه ما پیوستگی و وابستگی به یه مسئله پیدا می بدون استناد و بدون حجت و برهان قوی و دلیل نام این تعصب باطله یعنی یک کسی نسبت به آبش، خاکش یه کسی نسبت به نژادش، به قبیلش، به کسش، به کارش، به پدرش، به مادرش به عنوانش، به جاهش، به مقامش، به علمش به اصطلاحاتش تعصب پیدا میکنه. یعنی وابسته میشه بدون دلیل و در پیون هم دفاع می‌کنه در پیون هم دفاع میکنه. دفاع از باطل با ابزار هم امکان ندارد. این تعصبه عصبیت سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشومی است این عصبیت عزیزان تعصب این که در دنیای امروز به این چی میگن؟ در عرف سیاسی امروز اپارتاید حالا این میخواد عصبیت به نجات باشد عصبیت به پایگاه های اقتصادی و سیاسی باشد فرقی نمیگنه در آباد جلانش میخواد اوجه اون رو شما امروز میبینید در جماعتی که خودشون رو قوم برتر و نجات برتر روی این زمین میدانن این عصبیت ها به را ها رو دارن شما میبینید این تفکرات و پلید و منحوس سهیونیست رو مبتنی یا برعصبیت مبتنی یا عصبیت و نجات پرستی و نجات بردن اونقدر قمنگیز این ماجرا که دیگه در این فرصت و مجال این داخل پرانتز اجازه نمیده که من بگم به شما که تو این دیویست سال دیویست و سال هر جنایتی شما دیدید از ناحیه غربی ها بی ماها با حرزی از ناحیه تمام اون استعمارگنانی که اومدن حلقوم ملت‌ها رو 250 سال گرفتن کشیدن بیرون بردن زندگی کردن تا الان به زندگی میکنن برعصبیت بود حق توحش هم گرفتند حق توحش هم گرفتند و میگیرن هنوز وقتی به دوستان از میکردم توی کور راهی یه جایی که یه ماشین بیشتر نمیرفت در یه جایی در شما لنگلستان میرفتیم یک فرزانه آگاهی همراه ما بود گفت میدونی بهترین آسفال که در خیابان‌های اصفهان نیست گفت میدونی تمام این 98 درصد این راه و شوارع به تعبیر خودش با شرکت نفت فلان انگلستان در ایران تأمین شده است میدونی همه نفت ایران اینا اصبیت تصوب اون نجاد برتر تردانستند و به هیچ گماشتند انسانها را پدیده شومی که آن گرده مشرق زمین هنین زخم و گرده هنوز شهست سال بیشتر هفتاد سال از جمع شدن کمپانی هند شرقی بیشتر نمی گذره همه عصبیت تمام عصبیت به نفره فرمایش همیرون مومنین و اون چه از ابلیس و شیطان میگیم یه بود فردی داره یه بود چی داره؟ اجتماعی و جمعی داره عزیزان فرمود و عطف او ما کمنه قلوب کن من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه و این حیقته ها و کینه هایی که جاهلی و از جهل برمیخیزد به دنبال عصبیت و چی میاد؟ حقد و کینه میاد وقتی یه کسی تأثب نجادی میکند طبعا نسبت به نجاد مقابل چی براش ایجاد میشه حقد و کینه وقتی یه کسی تأثب برای یه موضوع خاص و یه فکر خاص و یه مکتب خاص داره میشه دشمن بقیه مکتب ها و فکر ها وقتی کسی به یه شخص خاص تأثب بیجا داره میشن بدخواه بقیه یه اشخاصی که مقابل اون هستن الله اکبر خیلی قضیه باریکه و خیلی زریفه این فرمانشه ازد تا زمان که این عصبیت رو این وابستگی ناحق رو به این تأثبات خشکه بدون فکر رو از جان‌های خودتون به در نیاورید طبعاً کینه های جاهلی رو هم نمی‌توانید به در عصبیت و کینه شدن دو مسئلهی که ما را کاملا دست بسته تسلیم شیطان می کنن دو تایی بعدیشم بفرمایید فرمود و ایران نسبی و قادل جاه فئن ما تلک الحمیت تکون فی المسلم من خطرات شیطان بدونید این همیت همین تعصب این بیاد ورزی های باطل در وجود انسان مسلمان از خطرات شیطان است از عمده خطرات شیطان این هاست و نخواتهی و اون نخبه شیطانی را در وجود انسان وارد می به کبر می آید و نزغات هی و نفثاته این دو تا رو توضیح دادم فدمت عزیزم پری روز پریروز را و ناففرا هر دو بالاخره ریشه قرآنی داره ما ی نزغن نک من اشیطان نزغن فستعف بالله گفتیم نزق چون عزیزان اصرار میکردن، تکرار می‌کنم ریشه اصلی لغت این این خیلی مهمه شاید به فضل الهی که مبنای کار در تفسیر و حتی در نحجور بلاغی امام است اعتقاد ما برای این است که باید واژه رو از ریشش، از اون ریشه اصلی بگیریم بعد به اصطلاح برسانیم نزق در لغت در حقیقت همان راندن علاق تحریک علاق اونم نه است نه قاتل نه سیب زدن سوار سوارکار به پشت این اولاق تا بکند راه بیفتد. نام این در اصل نزقه بعد در اصطلاح میشه عد خورد و فشیعل افساده یک کاری بکنیم که یک فسادی یه شرری بپا بشه با یه هرکر با یه تحریک با یه جنباندن توجه دارید نفف در اصل اشاره کردیم دم نفاسات فلعقد از همین ماده میاد دیگه نفف یعنی اون یک حالت انتقال آرام سریع یه نکته نفف حالا این قالب تو این نزق تو این تحریک تو این نفف شیطان چی میگذره منتقل میکنه به ما وسوسه وسابس. وسوسه بس جوشد تحریک به شرق. از طریق چی وسوسه فرمود اینها از نزقات و نفسات شیطان است بس بیت فقط او هیچ چاره ای ندارید اتفاق نمیشه اینها مگر به نور معرفت مگر به آب معرفت و شنا قدم اول در پنجه در پنجه ابلیس انداختن معرفتی است که در این نفس و جان باید بجوشد به اناویت الهی و به لطف خداوند وارد این میدان بشیم خب حالا در مقام عمل و در بیرون و اتمدو و از ات هذل دهلا و القا ات تعزز تحت اقدامکم و خلا ات تکبر من اعناقکم و اتخذ و توازو ان اصلحتم و بین عدوکم ابلیس ده جنوده خب بفرمایید فرمایید چه سلالله علیه کجام ابل حسن یا امیر المؤمنی فرمود وعتمدو ببینید اعتماد از ماده چی میاد اماد اماد چیست ستون پایه میگید از سلات و عمود و دین اون اماد و پایه وقتی یک کسی خیلی برای امری متمرکز میشه و کاملا توجه تمام میکند وجود خودش رو ملتفت میکند صرف وجود میکند به یه امری نامین میشه اعتماد در کلام عرب وعتم دو کاملا متمرکز باشید روی این مسئله رو چی؟ این که بنهید بر سرتون وضع تولل را یعنی این که بر سرتون تولل و توازع رو به عنوان یه امری که به اون افتخار میکنید بر سر بنهید گزاردن بر سر نشانه چیه؟ شما شب قدر چرا قرآن رو سرتون میگذارید؟ میگید مراسم قرآن به سر گرفتن داریم چطور این کارو انجام میدید یعنی خدای اگر تا امروز تو زندگی من قرآن جایگاهی نداشت رو زمین بود الان قرآن رو سرم میگذارم دیگه از امشب متحد میشم بیعت میکنم که جایگاه قرآن فقط روی سر من است به یک کسی که میخواد خیلی اعترام بزید میگید شما کجا جا دارید میگید چون رو سر بنده جا دارید یعنی یه چیزی رو که کاملاً به آن توجه می‌کنید، التفات می‌کنید، حرمت می‌کنید، کرامت می‌کنید، پاس میدارید و جدی میگیرید بر سر میگذارید و اونی که رو سر میگذارن در عرف انسانها به اصطلاح سلاتین چی رو سرشون میگذاشتن؟ اکلیل تاچ بر سرشون این نماد بزرگی سیادت آقایی توی جمع وقتی این بر سرش میدیدن مشخص بود چی؟ کیچه کار علما نمیدانم بر سرشون عمامه میگذارن عنب بن جلاب لطال الله و ثنا و يا متا عزول امامه تا اون صحنه درگیری عمد و کس این شاعر گفت عنب بن جلاب لطال الله و ثنا و يا تو مرا نمیشناسی متا عزول امامه تا تعرفونی اگر عمامه را بگذارم رو سرم بد میفهمی من کی ام از عزول امامه تا تعرفونی خود این نشانه بزرگی، سیادت و عرض به خدمتون جایگاه و منزلت. امیر المؤهلین فهموند بذارید رو سرتون تاج تواضع را بذارید این تزلد و خضوع رو بر سرتون به تمام معنا متمرکز بر این ام باشید من قبل از اینکه ادامه فرمایش شهزت تو بگم ببینید اینو ما تو باب توبه داریم عزیزان تو باب توبه داریم اگر کسی گناهی میکنند اگر کسی اوصاحی میکنند مال مردم خورده باشد. به ناموس کسی تعرض کرده باشد اگر کسی ماد و مردم خورده باشد بعد این بیاد مثلا پنجه سال لماس شب به این توبه نه از تو توفی کل شیعن به حسبه توبه در هر باب آن است که به تعبیر عرب ها من جا. از همون جایی که سنگ را آوردی برگردونی سرجاش بگذاری این میشه توبه یعنی در هر گناهی توبه اینه که نقطه مقابل و ضد اون رو انسان چه بکند کامل و قوی به جا تا جبران کند تا بتواند جبران کند التفات می دردی که شیطان ما را بدان مبتلا می کند که امام فرمود مبادید مبتلا تو می کند به اون درد کدام درد بود؟ درد که درد که... اینی که انسان گمان کند که کفر چونی گذاف آسان نبود محکمتر از ایمان من ایمان نبود اینی که انسان خودش رو فوق دیگران بداند اینی که انسان ساده بگم خدمت دوستان داشتهای خودش رو ببیند نداشتهای خودش را نبیند داشتهای دیگران را نبیند نداشتهای دیگران را ببیند اگر بخواید به ساده ترین کبر را تعریف کنید اینه که شما هر چه دارید، موجودی خودتون رو خوب می‌بینید، شش دانگ. نقائص و کاستی هامون رو اصلاً نمی‌بینیم. حالا به دیگران که نگاه می‌کنیم چه می‌بینیم؟ نقائص و کاستی‌هاشون رو می‌بینیم، هیچ حسنی ازشون نمی‌بینیم. نتیجه این چی میشه؟ من کاریکاتوری بزرگ میشم دیگران کاریکاتوری کوچک میشن این میشه که نتیجه اینه که من میمانم اینجا دیگه تو این کلاس کی بالاتر از من تو شاگردان این دانشگاه کی بالاتر از من استادی تو این شهر علم و علما کی بالاتر از ما تو این کشور کی فراتر از ما تو این جهان هستن کی بالاتر از ما یعنی این نتیجه این میشه که انسان فرعون میشه میشه انا رب بکومل اعلی لا اله الا الله کجا میبرد کبر انسان بالاتر انا رب بکوم که نه بالاتر از اون هم ممکنه ادعا کنم اگر الهی غیر از من موسا اتخاذ کنی به زندانت میفکنم اگر اتخاذ الهی دیگر غیر از من بکنی به زندانت میفکنم به اینجا هم می کشن توجه دارید خب حالا نقطه مقابل این کبر چیه؟ نقطه مقابل این کبر این حالت توازعه چه تواضع معرفتی چه تواظع عملی یعنی چه تو ذهن و خیال وقتی انسان نگاه می به خودش به شخصیت خودش به جای اینکه اول محاسن و داشته های خودش رو ببیند اول چرا ببیند؟ نقاعص و کاستی های خودش رو ببیند اول کاستی های خودش رو متوجه بشه که چی دارد چی ندارد نداشته ها رو و کاستی ها رو می به جای این که انسان وقتی به مردم نگاه میکند نق بزنه، قور بزنه، عیبشان ببیند زعفشان رو ببیند اول قصد مردمان ببیند، کمار مردمان ببیند بعد نوبت زعفشان باشه اون رو ببیند این اولین راهکار عملی است که انسان میتونه به نوعی از این چمبره کبر خودشو بیرون بکشد به عنوان راهکار ساده ارز میکنم خدمت دوستان پس نقطه مقابل این کبر شیطانی توازه هست فرمود. عتنید و وضع التذلل على رؤوسكم تواضع رو بذارید رو سرتون و الغاء التعزز تحت کن و این ظفرمندی و اون قالب بودن و چیره بودن خودت رو بردیار بزن زیر پات و خلعت تکبر من کن و این تکبر و رشته های تکبر و زنجیر تکبر رو از گردنت باز کن بکش بیرون جامعه تکبر رو از تنید این بحث عملی است این بحث عملی است یعنی تو مقام عمل بود این طور باشه لازم شد تو روایات معصومین نگاه کنید در کلمات نورانی محمد و آل محمد منت حوان زان تسلم علی کل من لقید یعنی تواضع عملی رو از چی شروع می‌کنن از سلام خب حالا هستیگه متاسفانه این رو میبینیم بلاخره مواجه میشیم مثلا تا هستو همونی بلاخره فکر میکنه بررسی میکنه که سلام بکند یا نکند از باهمترین دیجیگه های پیانبرتون که شنیدید چی بود علی ابدا و به سلام یعنی نبی مکردم کسی در طول اوم نتونه سبغت و سلامش بگیری اگر وقتی سلمان و ابوذر پشت هم پنهان شدن که بیان بیرون یه مرتبه بگن سلام علیکم پیامبر فرمودن سلمان که پشت دیواری سلامون علیک آمد بیرون گفت علیکم السلام یا رسول الله کسی سابقه در سلام به پیامبر نگرفت و ما این چی مثلا به نظرمون چی میاد و کار به اینجا میکشه یعنی از اولین نکاتی که شاخ کبر رو باید تو ذهنمون و دلمون بشکنیم من توان دارند تسلم کل من لقید رسیدیم سلام علیکم یعنی از راهکارهای مقابله با کبر رو از کوچکترین مسائل شروع کردند از کوچکترین مسائل اینه که شما تو زندگی خانوادگی خودتون کی گفته است که با اراده من حاکم باشه تو این زندگی کی گفته که اگر من یه چیزی رو تو این زندگی خواستم با زور همون باشه شب همون باشه کی گفته که باید این چنین اون چنان باشه شما 5 نفر تو این خانوادگی دزاتاری 5 پنجمیت پنجم دیگرانند اگر احساس کردید که تمام این فضا قرقره شماست انتل متکبر یعنی آلوده به چی شدیم آلوده به کبر شدیم گفتن تو هم این عمل ها با زنتون با شوهرتون با فرزندانتون در حرف زدنتون وقتی صداتون رو بلندتر کردید از طرف در حرف زدن میشه چی میشه کبر پس سعی کنید وقتی با کسی صحبت میکنید همیشه صدای شما از صدای او پایینتر باشد. میشه تمرین ستیزه با کبر در کلام در ذهنتون، در خیالتون، در عمل اون قدر زیباست عزیزان این رفتارها وارد محفل میشید هر کجا همه جا خانه اشق است چه مسجد، چه چه نش. مگر جای خاصی رو مباد بنشین، شراف المکانه، بل مکی شما یه جوری باشید، یه شخصیتی باشید که هر کجا نشستید همون جا بالای مجلس باشه هر کجا نشیدید همونجا بلای مجلس صدر مجلس باشد نه اینکه شما را صدر بنشانند که صاحب صدر بشید توجه می فرمان عملاً باید در مواجهه با کبیر عزیزان حرکت کرد بعد از اون معرفت این که اندوختیم و آموختیم امام در اینها رو میفرماید و خل اعتكبر کنی از گردن زنجیر تکبر از گردنت بردار جامعه تکبر رو از تنت بدر آور و تخزت حواظا مصلحتا بینکم و بین عدو وکم ابلیس و تواضع رو بین خودت و بین ابلیس به عنوان مسلحه قرار بده این مصلحت با سینه از ماده سلاح میاد، نه سلاح، با صد نیست، با سینه و این رو مثلت، مثلهای با سین به معنای مهمات یعنی مهمات خودت رو، ابزار مقابله خودت رو با شیطان چی قرار بده؟ توازع تمومه یعنی اگر تو مسلح به سلاح توازو بشی، شیطان کاری نمیتونه بکنه در قبارتون شیطان امده کاری که میخواست بکنه اینه که چه بکند تو را؟ بکه. حالا دیگه گذشت من همیشه ارز کردم ببینید شیطان ابلیسی که قرآن معرفی میکنه تراه نیست شما تو وجودتون قوه عقل دارید قوه چی دارید قوه وهم دارید قوه عاقله قوه واهمه تو وجود انسان عقل نماینده پروردگار است یعنی العقل و راعد المؤمن اون جلوداری که میکشد انسان رو میبرد عقل است قوت و جوهر عقل در وجود انسان که خداوند دو حجت در بین انسان ها دارد حجت بیرونی هم بیا حجت درونی عقل پیامبر درونی است عقل هرچی ما داریم از سوی خداوند میاد به قوه عاقله ما وارد میشه. اما یه قوهی تو وجودمون هست به نام وهم وهم میاد دریافت های عقلی شما رو چکار میکنه نقض میکنه نقض میکنه شما میگید من به این نتیجه رسیدم که اقلا این روش در برخورد با مردم درست است باید امانت دار بود تا به توانی جایگاه اجتماعی میگید من واقعا عقلا به این نشستم که اگه محصول من کیفیت لازم رو نداشته باشه من بازار پیدا نمیکنم میگه آقای این نزن تو چقدر بود خونه دل بخوری با مشکلات و تولید و نمی صادرات و واردات و چی و چی و چی و تا بازار پیدا کنی چطور بشه تو بیا تولیدتو بکن تا هم بکن بارد ببند فرار برو فرار کن بارد ببند برو یعنی هرچی عقل به شما میگه وهمیات چکار میکنه گفتار عقل را نقض میکنه نه اینکه طرح جدیدی مقابلش بده شیطان در عالم وجود و در عالم خارج جای قوه چی رو میگیره جای قوه وهم رو میگیره است یعنی نفوذ شیطان در جان و وجود ما هم از طریق قوه واهمه نه از طریق قوه عاقله <تصفح> از این طریق وارد میشه کبر خوب دقت بفرمایید کبر زائده قوه وهم انسان است کبر از وهم ما نشه میگیرد یعنی انت ادمای متکبر متوهمه <متحن> گاهی به چای دور زمانی ما الان میگن میگن عرض به خدمتتون استنادات خاصی دارن دون همونه بالاخره یعنی انسان متکبر این واقعا یه خودشیفتگی پیدا کرده است که تو وهمه تو خیال داره زندگی میکند نه تو واقعیت عقلانی توازن میاد میشکنه این حباب متوهمانه کبر را با تکبر عقل سوال میکنید از عقل میگید با تکبر من جلو میتونم برم تو جامعه در ارتباط با خلق و خدا یا با تبازو عقل میگه والله اگر تو با خدا متکبر باشی که مقابل خدا شاخشانه کشیده باشی که این لذین یستکبرون عبادتی سید خلون جهنم داخرین اینجا که پردت میکنه ذات باری تالا با اون سو. اگر با مردمم بخوای بخوایی متکبرانه برخورد کنی، اقلا نمیپذیرن، نمیپسندن انسان متکبر رو مردم متکبر را دوست ندارن، جایگاهی نداره عقل پاسخ رو میده اما وهم میگه تو اگر متکبرانه برخورد کنیم مردم گمان میکنند تو کسی هستی تو رو باور میکنند نه با توازه این قصه ستیزه وجود دارد امیر المومنین فرمود بدونید بهترین چیزی که شما به عنوان سلاح خودتون در مواجهه با شیطان دارید توازهه بین شما و بین عده بتون ابلیس و جنود ابلیس بعد فرمود فإنه له من كل امه جنودا و عوانا و بدونید شیطان از هر جنودی دارد سپاهیانی دارد یاورانی دارد و رجلا و فرسان و سواره ای دارد و پیاده ای دارد و کل نبی نبي ندوا شياطين الجنه فلئنس بدونید شما شیطان دارید و شیطان گونه دارید جالب این که در لغت شیطان رو به چی میگن؟ کلو متمردن من الجن و انس هر متمرد و سرپیچ از فرمان و خدا و از جن و انس را شیطان میگوید حضرت امام رضوان الله تعالی عاده اگر فرمود آمریکا شیطان اکبره مستندش همین سخن امیر المؤمنین است در عالم بیرون شما شیطان رو میبینید امام میفهماد ابلیس در بیرون در عالم خارج از میان انسان ها جماعات اقوام نیروهای خودش رو به تعبیر آمیانه چی کرده؟ یارگیری میکنه جنود خودش رو جمع می کند فِنَّ لَهُمِنْ كُلَّ و جنودًا و, و فرسان وَفُرْسَانًا وَلَا تَكُنُونَ من بود این جمله رو بگم اینو باب ول خد بررسونم خدمت از و لا کن او کلمه تکبر علاو ابن ام من غیر ما فضل جعله الله فی هست و ما و ناقت العزما و نفس هیم نقداوت الحسن. نکنه چقدر خوبه معلم ما وقتی درسشون رو میگن مطلب رو تمام میکنند بذار برو دانش آموزشون چی میگن برو دانشجوشون مثال ارائه میکنن. نکنه که شما مثل اون کسی باشید که بر فرزند مادرش تکبر کرد. و کار او به قتل فرزند مادرش یعنی بنادرش هم منطقی شد امام ما رو برگردون به کجا؟ به اولین صحنه هایی که شما که ابراحسد رو اینن در روی زمین و عوارز اون و شواهد اون رو بررسی می‌فرمایید. فمود نباشید مانند علم و تکبره ابن امه چی شد که قابیل و حابیل چی شد که این چنین شد تکبرش نکنه مانند متکبره بر ابن امه فرزند مادر خب علای تعمیر میتونی بلا مثلا اخیه به فرمایت امیر المامنین. اما اتخاذ از خود قرآن شد یبن ام لا تا به لهیتی ولا به وقتی موسا اومد و اون وضعیت رو دید که افسوس که این را خواب گرفته خونه دل ما رنگمه ناب گرفته وقتی این صحنه رو دید آمد سراغ هارون، ریش هارون و موی سر هارون رو به دستش گرفت اینجا روابط حاکم است نه روابط و برادری آرون گفت پسر مادر راهه کنی ریشو سر ما رو تا توضیح بدم به تو نگفت اخوی بلکه گفت پسر مادر یعنی روی انگس گذاشت روی رابطه و فصل مشترکی که برای همه خیلی ارزشمند و اون مادر است یه وقتای خدمت دوستان گفتیم به مادر در کلام عرب ام میگن ام در لغت به معنای تجمیع و جمع کردن یکی از ما به مادر ام میگن چون رشته اتصال همه است وقتی این زنجیره تسبیح پاره میشه و یه مادری از خانواده میرود هر دانه ما رو به دیاری یفکند اون پیوند بین اعضای خانواده و بچه ها چی میشه خواهر و برادر از هم گسسته میشه اون نقش مادری است که جمع میکنه دلها رو آگاهی وقتی که تو همین عرف امانه قسم میدادن گفتن به جان مادرت دیگه انسان مینش است وقتی نام مادر رو میشنید. فرمود نباشید مانند متکب بر فرزند مادر و برادرش که هیچی نداشت هیچ عاملی نداشت بر برتریش غیر ما فضزنن جعلله و لافیه سهدا ما نظمه به نفسه هی. هیچی نداشت جز اون فضلی که اون برادر به این داشت امتیازی که اون به این داشت یعنی وارونه میدید غذا که این شیوه بیانیست است بلا عیب فیهم غیر عن سیوفهم بهن نفلول من قرائ الكتائب این قوم لوت چه مشکلی دارن ای به اینها چیه انهما ناسن یتطهرون عیبش اینه که مردم پاکین این گروه مشکلشون چیه اینا یه مشکل دارن اونم اونقدر شجاعن که شمشیراشون اونقدر به سر دشمنانشون زدن که شمشیرها کند شده است شاعر حرب میگه این این شیوه بیانه این برادر چه مشکلی داشت جز فضل و تقوا این قاتل بر او چه کرد؟ تکبر کرد که المتکبر علا ابن امهی من غیر, مفا... غیر ما فضل جهرال لافی سواما الحقت العظمت و به نفسهی من عداوت الحسد چی شد که این متکبر تکبرش جوشید؟ چی متولد شد از دل حسد؟ از دل حسد چی بیرون میاد عزیزان؟ از دل تکبر و کبر چی بیرون میاد؟ حسد خوب دقت کنید؟ از لوازم شوم کبر در وجود انسان حسد است چون متکبر بنا شد فقط حسن خودش رو ببیند و ای به دیگران حالا اگر در دیگران حسن ببیند چی میشه براش دیگه نمیتونه تحمل کنه این دیگ در درونش به جوشش در میاد از دل کبر حسد در میاد حالا اگر کبر و حسد با هم دست به دست به هم بدن چی از دلش متولد میشه؟ تمع آز شره که حسد به دنبالش چی میاد؟ آدم متکبری که چنین دیرگاهی رو به خودش دارد و نسبت به دیگران و داشته های دیگران حسد میبرزد حالا چی میشه؟ میشه تمام آزمند و حریز دیگه دوست داره همه چی رو به ببلهد همه چی رو بالا بکشد و تمام این ستایی که عرض کردم همه اینها در حقیقت ریشه در چه دارد؟ جهد، جهد، جهد یعنی جهل ام الخباهست تنه اون این درختی که ریشه اون جهل است، تنه اون کبر است، و دو شاخه اصلی دارد که حسد و تمه است. آوازن الله منزالک خدا ما را بر حذر بدارد فرمود به نفسهی من عداوت الحسد و قدهت الحمیه فی قلبهی من نار القذب اون توثب نسبت به خودش و جایگاه خودش در درون سینش یک قذبی رو شعله کرد، دیگه نتونیست کنترل کند خودش رو فقط هون برادر رو کشت و فقط شیطان و فی انفهی من ریه کبر شیطان دمید در وجودش این کبر رو وقتی میخواستن آتش رو در گذشته شعله برکنن چگار میکردن؟ فوت میکردن با دوستان میدمیدن دم دستگاهی بود که دستگاه دم بود تو کوره ها دیگه منفخه عرب ها میگفتن شیطان دمی وجودش که این آتشو چکار کنه آتشه که بروش شعله برتر کند الذی أعقبه الله به ندامه کشت بعد فأس به منان شیطان تسلیل کرد برای اون قتل برادرش رو قرآن میگوید بعد فأس به منان ندمین چه غلطی بود ما کردیم وقتی جنازه رو دستش دید فاسبه همه ند اعقبه الله به ندامه اما و الزمه آسام القاتلین الى یوم القیامه و خداوند گناه جمیع قاتلین تا روز قیامت رو دوش این قاتل اول قرار داد چرا چون خشت بنا و سنگ بنایه نخستین رو گذارد و شد اولین قاتل ومن سن سنة سيئة فعليه مثله وزر من عمل بها الا يوم القيامة و کسی که هر شر رو بنا می کند و دیگران عامل با اون شر تا قیامت بدان مبتلا خواهد بود و خود اون هم گرفتار وزر و با, با که به گردن او می آید امیر حالا این مطلب رو پرورده تر پخته تر با هشدارهای اجتماعی بازگو می که استمداد می از دم قدسی وجود نازنین علوی که بتوانیم بقیه ی مطالب رو در روبت آینده خدمت دوستان بازگو کنیم پروردگار علی و نورانیت و سوز سینه امیر المؤمنین و همسرش جانهای ما را آماده کلمات نورانی امیر المؤمنین قرار بده